همون گونه که انایت دارید ما از صحیفه سجادیه مولایمون امام سجاد علیه صلات و السلام راه زندگی انسانی رو فرامی گیریم عواملی که ما را وادار میکند اعمال و حرکات که خداوند نمیپذیرد و نمیپسندد انجام بدیم آنها رو به ما میشناساند و نحوه از بین بردن و زدودن اونها را بیان میدارد. نکته بسیار مهمی که در دعای 17 صحیفه سجادیه که جلسات متعددی است مستهزری با هم داریم بحث می‌کنیم حضرت هی این رو به ما تذکر میدند حواسمون رو جمع کنیم نحوه فعالیت‌ها و نفوذ شیطان در قلب ما برای شیطانی کردن دل و جان است اعمال انسان، ظاهر انسان، رفتار انسان، گفتار انسان می تواند شیطانی باشد یعنی نحوه حرف بزند که شیطان دوست دارد نحوه عمل کند که شیطان می پسندد بگونه ای کردار و رفتار او در جامعه بروز کند که شیطان اونگونه میخواهد ولی چه می شود که این انسان اون که شیطان میخواهد عمل میکند امام سجاد علیه السلام فرمودند این در صورتی است که شیطان در دل و قلب این انسان نفوذ کند دل را شیطانی بسازد لذا در دو جلسه گذشته دو مطلب را که امام علیه السلام روی او تأکید بسیاری داشتند اشاره کردیم یکی این اللهم الله لا تجعل اللهو فی قلوب مدخلا خدایا شیطان رو در دل ما امکان ورود براش قرار مده دومی ولا تو تنم نلهو فی ما لدینا منزلا اگر شیطان وارد قلب ما شد خدایا کمک کن در اینجا نمونه وطن اختیار نکنه تو خانه دل من خوب منزلی برای خودش به حساب نیاره بلکه کاری کنم که از خانه دل من خارج بشه در ادامه این مطلب امام علیه السلام می‌فرمایند: اللهم و ما سول لنا من باطلین فعرفناه ای خدا بار اله ها از تو میخوام ما را با هر باطلی که شیطان در نظر ما اون را آراسته است عرفناه و آشنا بگردان کلمه سوله تصویل با سین یک لغتی است که در قرآن کریم هم چند جا به کار رفته و نکته بسیار ظریفی دارد که حقیقتا باید دقت بیشتری بهش بکنیم ساوله یوسف و تسویلن یعنی آراستن منظور از آراستن چیه؟ یه وقت بنده فرض کنید که الان اتاق پذیرائیم و میخوام بیارایم این که کار بدی نیست اتاق رو تمیزش میکنم تابلو قشنگی رو به یه جای این اتاق میزنم احیاناً مبلمانم رو تمیز میچینم اگه دوستان منم وارد این سالن پذیرایی بشن فضای مناسب و خوبی باشه آیا منظور این آراستنه؟ نه آراستن یعنی چی؟ کاری را که خوب نیست چیزی را که صحیح و درست نیست اما اونو خوب جلوه بدن یعنی نوعی قلقش نوعی آلوده کردن حقیقت در قالب یعنی باطل رو در قالب حقیقت جلو دادن اجازه بدید مثال دیگ کنم مثلا فرض بفرمایید که یه فروشنده‌ایه جنسی دارد که این جنس خرابه به درد نمیخوره ولی برای اینکه بتواند این جنسش رو به فروش برسانه ویترینی می سازه یک بوتیکی درست میکنه، تزیینی میکنه، کیفیتی زرق و برق به این جنس میده که راهگذری که از اونجا رد می شود فریب این ظاهر و آراستگی و زرق و برق را بخورد تا این شی را بخره اگر چیزی را که خوب نیست ما سعی می کنیم خوب جلوه بدیم تا طرف فریب بخورد و گمان کند که خوب است این را بپذیرد این رو میگیم تصویل در قرآن کریم من دو موردش رو اجازه بدید از کتاب خدا اشاره کنم یک در سوره مبارکه یوسف آیه هیجده اونجایی که برادران حضرت یوسف رفتند و اون کار خلاف رو مرتکب شدند، حضرت یوسف رو به چاه انداختند، پیراهنش رو به خون آغشته کردن آوردن پیش باباشونو گفتن که گرگ یوسف رو درید و خورد در آیه هیجده خداوند این داستان را اینگونه بیان می کند و جا او علا سهی به دم کذب قاله اینا اومدن با پیراهن حضرت یوسف که به خون دروغی که بهش آغشته کرده بودن که مثلا این حالا گرگ خورده و خون حضرت یوسف است که گرگ او را درید ریخته اینو قاله این قال یعنی جناب یعقوب علیه السلام حضرت یعقوب وقتی این صحنه رو دیدن قال بل سولت لکم انفسکم امرن حضرت یعقوب به این بچه ها فرمود، بل سولت لکم انفسکم امرن نفس شما این کار رو برای شما سولت تصویل کرده یعنی یک کار بدی رو نفس شما فریب خورد، گول خورد، خیال کرد کار خوبیه، خیال کردید کار خوبی کردید، لذا دست به این کار زدید، این کار را که اصل کار بد است، دروغ و خیانت و یک پسر رو از پدر جدا کردن و اینگونه برادر رو عذیت کردن، به گمان اینکه که یه مواهبی به گیرشون میاد، این رو حضرت یعقوب کلمه تصویل رو به کار بردن، فرمودن صبر بلد. البته بعد در ادامه آیه داره فصبرن جمیل والله المستعان و علامات صفون حالا من که در مقابل شما بچه ها قرار گرفتم که تصویل نفس شما منو مبتلای به این فراخ کرده پس صبر نیکوس خدا هم خوب یاری کننده ایه. من صبر رو در پیش میگیرم اما نقطه‌ای که مورد نظر بنده بود در این آیه شریفه اینه کاری را که برادران حضرت یوسف انجام دادن حضرت یعقوب علیه السلام این کار رو تصویل نفس می‌خواد مورد دوم در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه شماره 25 در این آیه حالا آیه 24 رو هم می‌خونم که چون شاید در فهم آیه 25 بیشتر ما رو کمک کنه در آیه 24 خداوند می‌فرماید افلا تدبرون القرآن ام عَلَى قلوب أَقْفَالُهَا آیا تدبر در قرآن نمی‌کنند یعنی اگر کسانی عقلشون فکرشون رو در فهم آیات قرآنی به کار ببرند کتاب خدا سخنان حکیمانه حضرت حق موعظ پروردگار عالم باید دل انسانه رو تکون بده روحیه انسانه ها رو تغییر بده همونطوری که در طول تاریخ بوده هم در صدر اسلام کسانی با یک روحیه عناد و مخالفت و دشمنی می سراغ پیغمبر که با پیغمبر در بیفتند و با حضرت درگیری درست کنند ولی وقتی آیاتی رو می شنیدن، چنان دلشون به لرزه در میآمد که خیلی از اینها از همین طریق مسلمان می داستان فزیل ایاز رو همه تاریخ نقل کرده دزده مشهوری بود از دیوار خانه ای بالا رفت که اون طرف دزدی کنه نیمه های شب بود صاحب خانه مشغول مناجات و دعا بود قرآن کریم رو می خوند علم یعنه للذین آمنو انتخش قلوب هم لذکر الله آی... آیا وقت اون نرسیده کسانی که اظهار ایمان میکنن دلشون خاشع بشه برای خدا قلبشون خشیت و خشوع پیدا کنه در دل خدا نفوذ داشته باشه چنان این آیه بر فزیل عیاز تأثیر گذاشت گریه کرد منقلب شد از روی دیوار به این طرف برید توبه کرد شد از عباد و عارفان راستین تاریخ اسلام لذا قرآن کریم میفرماید افلا یتدبرون القرآن؟ آیا تدبر در این قرآن نمی کنن ام علا قلوبن اقفالها انگار که بعضی دلها رو میسین که درش و قفل زدن بستند به روی حق باز نمیشه خانه دلی که درش به روی حق باز نشه خب معلومه به روی شیطان باز میشه ولی خانه دلی که به روی شیطان باز نشود این خانه به روی حق گشوده میشود شود اون وقت آیه مورد نظر من آیه 25 ان اللذین تردوا على ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى از شیطانو لهم و املا لهم انایت به این آیه بکنید ابتدا ترجمه آیه ارتدو علا ادبارهم ارتدو علا ادبار یعنی برگشتن به عقب برگشتن به عقب یعنی انسانی گمراه بوده ادایت شده دوباره برگرده به دوران گمراهی خودش انسانی جاهل بوده یا مطالبی رو رفته زحمت کشیده یاد گرفته دوباره برگرده به همون دوران جاهلیت خودش تمام اونچه که فرا گرفته مثلا به عنوان مثال بگم بنده مثلا برای حفظ سلامتی جسمم جاهل بودم چیزی بلد نبودم کلاس رفتم کتاب خوندم اساتید به من یاد دادن مسائلی فرا گرفتم که اگر این گونه زندگی کنم سلامتی من بهتر باقی میمونه اما بعد از اینکه همه این زحمت ها رو کشیدم و یاد گرفتم دوباره برگردم به همون دورانی که چی بلد نبودم همون جور زندگی کنم خب یه عاقلی که وارده به من میگه مگه شما اینا رو نمیدونی نخوندی به یاد ندادن پس چی شده که این گونه عمل میکنیم؟ قرآن کریم میفرماید ان الذين ردوا على ادبارهم اینایی که بر می گردن به دوران قبلیشون من بعد ما تبین له بعد از اینکه هدایت براشون تبیین شده پیغمبر اومده، معجزه اومده، انبیا اومدن، امامان آمدن این همه علمای بزرگ در طول تاریخ مطالعه کردند، کتاب ها نوشتند، حکما و عرفا و بزرگان چه رنج ها که در این مسیر برده نشده حقیقتا اگر انسان غرض رو کنار بگذاره، یک مقدار صادقانه بیاد اهل مطالعه و تحقیق باشه، فکر کنه غیر از انبیا و اولیا که چقدر شهید شدند، زندان رفتند، تبعید شدند، عذیت و آزاری از مردم زمانه دیدند، اینا حسابشون جدا. پیروان انبیا و اولیا چقدر از آلمان راستین، حکما و عرفای واقعی خون دلها خوردند. تا حق رو خوب بفهمند و به دیگران بیان کنند حالا این آیه شریفه 25 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تَبَيِّنَ لَهُمُ الهدى بعد از اینکه این, این همه زحمت کشیده شده هدایت تبیین شده از شیطانو و لَهُمْ لهم و عمل لهم دو تا لغت در اینجا به کار برده که این دوتا لغت کار شیطانه از شیطانو شیطان چه کرده است؟ سبلالهم شیطان امرو برای اینها آراسته است تصویل کرده که تصویل و توضیح دادم آراستن یعنی چی؟ یعنی باطل رو جلوه داده حق رو در نظر اینها میرنده باطل رو به شکل زرق و برخ کرده در نظر اینها به اینها جلوه داده املا هم یعنی امداد یا طولانی کردن آرزو هر دو معنی میده پس شیطان سب لهم تصویر کرده بدی ها رو در نظرشون جوری جلوه داده وقتی گرایش به بدی پیدا کردن دیگه این همه ارزش ها من بعد ما تبین لهم الهدا دیگه در نظرشون جلوه پیدا نمیکنه و املا لهم شیطان هی کمکشون میکنه آرزوهای طولانی در آنها ایجاد میکنه که به اون دنیای خیال موهومات خودشون فرو بروند در اثر اون خیالات موهومی که پیدا میکنن یا این امدادی که شیطان به اونها میکنه دچار تصویل نفسم شدن امر باطلی در نظر اونها آراسته جلوه کرده این باعث شده که تمام اون ارزش های و اولیاء رو ندیده بگیرن پس این قسمت با توجه به دعای قرآن ما این سنها توجه داشته باشیم اگه شیطان در درون ما رخ نکرد کار شیطان اینه باطل رو جلوه بده زرق و برق کنه این جنس بنجله آلوده را با زرق و برق ما خیال کنیم ارزندست و بخریم لذا امام سجاد علیه السلام داره کارهای شیطان رو بیان میکنه اثری که شیطان میگذاره در این دعا به ما معرفی میکنه به ما یاد میده خودتون از اینا کنار بکشید از خدا کمک بگیرید تا بتوانید موفق بشید اینجا حضرت این رو الله اللهم ای خدای من و ما سبل لنا من باطلن اون چه از باطل را که شیطان برای ما تسویل میکند یعنی میآراید زرق و برقش میکنه جلوه میده که این باطل در نظر من جلوه کنه فعرفناه تو ای خدا میخوام که به من معرفی کنی به من بشناسونی کار شیطان تسویل است یعنی آراسته کردن قلابی باطل که ما گول بخوریم اما امام میخواهد که از خداوند بخواهیم در قبال تصویل شیطان به ما معرفی کند این معرفتش رو در ما ایجاد کنه اجازه بدید با مثال ارز کنم اگر مثل ارز کردم من از کنار مغازه ایرد میشدم یه جنس بونجلی رو اومدن زرق و برق کردن با یه دکور خاصی با یک بوتیک پر زرق و برقی میخوان من جلب این جنس بشم و جنسو بگیرم اگر وارد نباشن خب طبیعیه گول میخورم این زرق و برق منو فریب میده رو میخرم ولی اگر کسی به من یاد داده باشه این جنس مثلا فرض کنید که یک دستگاه آب می یه تلویزیونه یه کامپیوتره کسی به من یاد داده که یه دستگاه آب میگیری سالم باید این مشخصات رو داشته باشه یه کامپیوتر باید این ویژگی ها رو داشته باشه من وقتی اینو معرفت داشته باشم وارد این فضا شدم طبیعتاً بررسی میکنم ببینم این مشخصات رو داره یا نه اگه نداشت اون زرق و برق که منو کول نمیزنه میگم نه خیر تازه میفهمم شما معلومه خیلی آدم شیطونی هستی داری با این زرق و برق منو میفریبی جنسی که ضوابط جنس سالم را ندارد به نام جنس سالم بخرم گول نمیخورم میام بیرون ولی وقتی نشناسم معرفت لازم رو نداشته باشم خیال میکنم این جنس واقعا ارزنده است و میخرم لذا در آیه دویست و دوازده سوره بقره قرآن کریم اینجوری به ما یاد میدهد زینا للزین کفرو الحیات الدنیا زینا زینا داده شده است این کلمه فعل مجهول چیزی نداده خیلی عوامل در رأس شیطان همین جوری که ازت فرمودن شیطان تصویل میکنه یعنی میارایه اینو باطل رو یه جوری تزین میکنه که آدم جذبش بشه زویه نه اگر زویه نه ولی برای چه کسانی زویه نه؟ للزین کفرو کسانی که روی چشم دلشون پردن داختن چون کفرمانی پوششه کسانی که روی چشم دلشون پرده انداختن و چشم دلشون نسبت به حقیقت پوشندن این زینت ها در نظر اونها زیبا جلوه میکنه اما کسی که معرفت دارد کافر نیست پرده رو کنار زده چشم دلش رو به مطالعه دقیق باز کرده و گشوده و توجه دارد که او که فریب اینا رو نمیخوره لذا میگه خدایا اللهم و ما سو من باطله ای خدا اونچه از باطل را که شیطان میخواد تصویل, کنه، تصویل کرده آراسته فعرفناه و تو به من معرفی کن اما اینجا یه نکته خیلی مهمیه که میخوام بهش توجه کنیم اگر بنده سر کلاسی باشم معلم دلسوزی دارم دو مطلب سه مطلب ده مطلب رو به من یاد داده من گوش نکردم پشت گوش انداختم امروز میگم که جناب معلم شما نسبت به این مسائل منو بیشتر آگاه کنید میگه چه فایده ای داره عزیز من من که بهت میگم تو که گوش نمی کنی تو که سخنان منو ازش پن نمیگیری آیا این معلم خسته نمیشه راه نمیکنه بعد نه اینکه ضعیف باشد <تصفح> لازمه تعلیم و تعلم اینه میگه وقتی نمیخوای استفاده کنی طبیعتا من هم نیرومو نباید اینجا برای شما مصرف کنم به همین جهت در امر به معروف و نهی از منکر که یکی از واجبات مهم دینی ماست به ما گفتن اون جایی که امید اثر نیست سلب تکلیف می شود یعنی عمر شما ارزشش بیشتر از اینه وقتی اون جایی که دیدید اثر نداره رو بخواید ضایع بکنید خب حالا اگر کسی خداوند این همه هدایت کرده نمی پذیره. بعد بگه خدایا به من معرفی کن معلومه دعاهات مستجاب نمیشه خداوند ذابطه گذاشته در قرآن کریم میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم و لئن كفرتم ان عذابي لشدید اگه شکرگزار بودید خداوندم افزونی برای شما قرار میده شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند کفر نعمت کردی خب از کف تو میره لذا اگر اینجا امام به ما یاد میده که از خدا بخوایم فعرفناهو خدایا به من معرفی کن ولی باید این زمینرم داشته باشیم امدادهای حضرت حق، هدایت پروردگار، راهنمایی های خدا دستورات حضرت حق را میپذیریم که انایت تداوم بیابد. یا اونها ای را که برای ما فرمودن پشت گوش گذاشتیم و استفاده نکردیم اینا منوط به خاص ماست که در مقام عمل بهش توجه کنیم پس از این فراز از فرموده امام سجاد علیه السلام این نکته ها رو با هم توجه کنیم یک شیطان کارش تسویله اصولا هر عامل باطلی کارش اینه باطل اگر بخواد بیاد یک امر بدی را به خرد ها بده، مخصوصا در مراحل اولیه که فطرت آلوده نشده، دل هنوز خیلی آلوده نشده، یک نمیاد، با اون همه بدی جلوه بده بلکه می آرایه تزین می کنه زمینه قلقش و فراهم می کنه نوعی فریبکاری رو در پیش می گیره تا طرف گل بخوره این کار شیطان است که اگر در نفس ما غلبه کرد خود نفس هم همین کار رو با ما انجام میده. هوای نفس ما وقتی ما رو می خواد به سوی یک عمل بدی بکشونه. هی تحریکمون می کنه امام صادق علیه السلام فرمودن مامن قلبن الا بالله ازنان علل اهدا ملك مرشد و علل اخرى شیطان مفتن هاذا یامر و هاذا یزجر فرمود قلب شما نیست مگر اینکه دو تا گوش داره کنایه است دیگه عنایت دارید یعنی چی بر در یک گوش خانه دلتون ملک مرشدی نشسته است یعنی اون الهامات الهی اون انایات حضرت حق که در درون این انسان هی داره میگه اینجوری باش، کارهای خوب بکن، سراغ بدی نرو، ها رو ببین، آبد باش، چند روزه دنیا ارزش اینکه آلوده شوی ندارد. اینا یک طرفه و علل اخرى شیطانون مفتن، اما بر در گوش دیگر شیطان فتنه‌انگیز نشسته. هی داره انگیزی میکنه که وادار کنه به این, کاره ب... هازای با هازای از این, این کار، هازا یا عمرو به هازا یا ازجری میگه این کارو بکن، این میگه نکن. اون میگه این کارو بکن، این میگه نکن. ما باید اینو بدونیم اگر در دنیای درون خودمون زمینه رو برای شیطان فراهم کردیم شیطانم کارش تصویله کم کم نفس ما میشود شیطانی خود نفس ما میشه تصویل کننده یه مسولیه هی hey, داره باطل رو در نظر ما حالا ابن نداره کی گفته چهار روزه دنیا رو باید خوش بود، اینقدر گوش بیعرفان ندید، اینا همه تصویل نفسه. تا از این طریق انسان رو سوق بدهد به سوی آلودگی ها، خب چه بکنیم که اینجوری نشه؟ میگه از خدا بخوایم فعرفناه و خدا یا به ما معرفت بده، خدا یا به ما قدرت شناخت بده، خدا یا به ما بشناسان این تصویل نفسه، خب البته بعد به این نکته توجه کنیم که سنت پروردگار اینه، و لذین احتد و زدنا اونایی که قبول میکنن خدا زیاد میکنه. یختصصبح برحمته من یشا خدا اختصاص میده رحمتش رو برای کسانی که میخواهن اگر بخوایم خدا وگرنه ممکن ما کفران نعمت کنیم خداوندم نعمتش رو از ما بگیره. یکی از این نعمتها که اگر شکرش رو به جا آوردیم خدا برو می افزیت چیست؟ معرفتی که خدا به ما داده ترتیب اثر بدیم در مقام عمل این معرفت را عملی کنیم که الله در ادامه بحثمون که حضرت می‌فرمایند و ازا ارفتناه و فقناه و این بحث یه مقدار دیگری باز در اون فراز از دعای صحیفه با هم دیگه به بحث مینشینیم نشینیم الله و سلام علیکم